فصل 8 قواعد فقه و سیاست 42401 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله و اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقية الله فی العراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا با تأکید بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی اهل بیت ادخار الله هم السلام بحثمون رو آغاز کن. یکی از موارد مهمی که در مواعث اجتماعی سیاسی می مطرح باشه و برمایه مسلحت عام ما لحاظش بکنیم میگن گن تقدیم مسلحت ایمان بر مسلحت اعمال مفهوم که ما اینجا در نظر داریم یک مسلحت مقایسه و اینه مسلحت ایمان با مسلحت اعمال خب این یه مقدار پیشیدگی داره اولا مسلحت ایمان یعنی مثلا مباحثی که به اعتقاد عمومی برمیگرده گرده رعایت در واقع حفظ ایمان و حفظ ایمان و تقویت اون مسلحت خلاص قابل توجه و مهمی در عرضش های اسلامیست شما یه کارهایی میکنید که مسلحت ایمان فرد و جامعه را رایت کنید ایمان افراد و ایمان مجموعه جامعه میبایست مورد احتمام اه اه اه یکایه که اونها و همچنین خلاصه مبلغان مبلغ... علما مبلغان و حکومت اسلامی باشه خب یه جایی اگر تزاهن بشه بین مسئلت ایمان مسئلت حفظ اعتقاد با مقایسه با مسئلت اعمال مس هر کدام از مثلت اعمال چیه هر یکی از در واقع واجبات بگیم تکالیف الهی به عنوان افعالی مد نظرند که مساله خاص خود رو دارند هزام همه این دو در واقع از این منظره که که برخی از امور به حفظ و تقویت وضایف و در واقع به حفظ و امتصال احکام برمیگرده تکالیف میگرده برمی و در مقابل برخی از خلاصه امور و برخی از وظایف ما معتوفه به سیانت از اعتقادات. تضامه این دو تا چیه؟ اینه که این دوتا با هم تقابل پیدا کنن و در برخی مسادیق مثلا که به طور نمونه فعالیت های مبلغان یا حکومت اسلامی به جای در راقه متکی بر توانمندی های محدوده. به تعبیر دیگه اونها چه مبلغان چه حکومت اسلامی امکان سیانت از ایمان و برخی واجبات و برخی تکالیف شرعی به صورت تو خلاص خلاصه ممکن است نباشه در واقع فرض تزاهم تزاهم مجبور متکی بر امتناع وقوعی سیانت از ایمان و برخی تکالیف به صورت تو امانه. در نتیجه فعالان و مکلفان فردی یا حکومتی یا بگیم جمعی یا جمعی یا حکومتی بناچار خلاصه بناچار باید چه کار کنم تمرکز خود رو بر, بر سیانت و تقویت و حفظ یکی از اونها بکنند شما میرید تبلیغ در جایی که در در مواردی که حفظ اعتقادات و در واقع نیازمند تلاش و امکانات خاص و خلاصه خاص و شایان توجهی است در این در این موارد چه بسا نتوان سرمایه وقت وقت و دیگر سرمایه ها رو فرصت ما خیلی محدود فرصت و سرمایه خلاصه انسانی یا غیر انسانی کفاف پوشش دادن مثلا در واقع کفاف آموزش تکالیف یا زمین سازی برای اجرای اونها رو خلاصه مهیا نداریم در این صورت باید خلاصه اصلاح اصلاح و حفظ اعتقادات رو در اولویت قرار داد آیا ما ایمان مردم رو تقویت کنیم یا یه فعل جزئی خلاصه اینجاها جای اون اعتقاد است خب پس عملا ما تطویقمون بر چه اساس شد این تحلیل محتوا شد تحلیل در واقع بگیم ببخشید تصویر تضاهم شد که اینجا تصویر تضاهم چگونه است اصلا ما تضاهم داریم یا نداریم میگیم بله یه جایی امکان داره امکان داره به چه صورت؟ به این صورت که ما مثلا میخواییم آموزش بدیم در نتیجه خلاصه هم دفاع هم اینطوری بگیم مرحله اول آموزش اعتقادات و احکام الهی میتوانند در واقع شرایط محدودی تصویر شدند که به نوعی تضاهم میان وجوب این دوتا رو ایجاد میکنه تضاهم میان وجود آموزش دسته اول و دسته دوم رو خلاصه به دنبال داره این متضمن این هاست خب چونان که غیر از آموزش دفاع از اعتقادات و احکام الهی هم میتوانند دوچار مبتلا به چنین این بشند خب پس اینا متفاوته پس اینا خلاصه مسادیق مختلف است در واقع در جسد یه مسئله هم چیه؟ اصلاح حالا این گرایش های همه مسلمانان رو مبتلا به این میدانند که دفاع نه تنها دفاع اصلاح در واقع در اینجا ما در نتیجه چی داریم در نتیجه خلاصه ما با چند مورد ما خلاصه مسئله داریم چند نوع تضاهم داریم که خلاصه چه باید بکنیم این تضاهم مصادیق مختلفی داره تضاهم بین اعتقادات و احکام مصادیق متنوع و خلاصه قابل شایان توجهی که عمدتاً یه بخشیش برنامه‌ریزی به آموزش و یه بخشش هم میگرده گرده خلاصه به دفاع و این موارد رو تبیین میکنه خلاصه دفاع آموزش و بگیم اصلاح یه مصداق هم چیه؟ اصلاح اعتقادات اینجا خلاصه نیازمند این خلاصه معقول است یعنی یه جای اعتقادات خراب شده این معقول روالت معمولا آن که خیلی دچار مشکل بد دینی هستن یک جاهایی بدعتگزاری های شده در مبارزه با بدعت های احکام و اعتقادی این قاعده ترجیح رو به اصلاح خلاصه اعتقادات معطوف میدانه و باید خلاصه این رو ما سرسامان بدیم این هم یک موردی به حال شما الان البته اینجا شما در میانه احکام و اعتقادات هم هر کدام این موارد مختلفی داره تضاحم در تضاحم بین خلاصه امور آموزش آموزش تبیین دفاع و اصلاح اعتقادات خلاصه امکان ضرورت اهم و مهم وجود داره چنان که خلاصه چنان که در آموزش و تبیین احکام هم همینطور در مورد احکام هم احکام و تکالیف هم این مورد به چشمی خوره خب یه بحث دیگه میرسیم بحث اجرا یه بحث مهمه اجرای چون این در واقع در مرحله اجرای احکام هم خلاصه به چشم میخوره علاقه اجرای اعتقادات معنی نداره مگه این که بگیم آموزش و دفاع خب پس باید در نتیجه باید باید بین آموزش احکام هم خلاصه افراد و دولت اسلامی ترجیحات لازم رو رعایت کنند ما الان یه ابتلای عام داریم آموزش زبان انگلیسی اهمیت داره یا آموزش احکام آموزش اساس زبان عربی اهمیت داره یا آموزش خود اعتقادات ما هدفی داریم خب این رو به عنوان یک حکمرانی بگیم در واقع اینجا نگیم فقه سیاسی اینجا معقوله حکمرانی داریم میاریم حکمرانیه حکمرانی اسلامی اختصاعت عملی خاصی در آموزش و سیانت از فرهنگ اسلامی داره خب اینجا باید چه کار کنه آیا باید بیا همینطوری کلی کار رو پیش ببره یا نه خب اینجا مسئله بسیار مهمیه فراتر از در واقع این تضا هم ها سرفان محدود به خلاصه به امتصال مکلفان به صورت فردی نیست بلکه اورانی اسلامی هم اینو باید در نظر بگیره و خلاصه چون که ر شناسا هم شناسایی شناسایی و ررفع تظوم در فرهنگسازی اسلامی وظیفه‌ای خلاصه مهم بر وظیفه اساسی بر دوش حکومت اسلامی است. خب، به تر نتیجه باید در نتیجه باید اولویت‌های های فرهننگی رو فرهنگسازی رو ما خلاصه از جانب به حکومت اسلامی، بر اساس این قاعد خلاصه دنبال بکنیم و باید تقویت کرد خب این یه مثالایی داره بیش از اون که مورد فردی داشته باشه اینجا حکرانی یه اختضایی داره در اولویت گذاری با توجه با توجه که به اون محدودیت های مالی محدودیت ها کم توانی ها بلکه ناتوانی ها و ناتوانی هایی که همواره غریبانگیر دولت اسلامی است خلاصه باید چیکار کنه خلاصه این ولوی باید باشه که اینها رو رفع کنیم. خلاصه و ما این موارد تصویر بکنیم و دنبال بکنیم تا خلاصه بتوانیم یک گوامی به سمت اسلامی سازی نظام برداریم. اینجا ما با کدام موارد مواجه هستیم؟ موارد بسیار فراوانی که در اساس فرهنگ سازی اسلامی است. آیا در آموزش اسلامی ما رعایت اهم و مهم کردیم در آموزش و دفاع از ارزش‌های اسلامی نمی‌توان خلاصه به میزان فرصتها، امکانات و توانمندی‌ها بی‌توجه بود. در ابعاد مختلف در بازه های در بازه زمانی در سیر تاریخی و بگیم در خلاصه در عدوار, و در عدوار حکومت اسلامی ما نمیتوانیم بیتوجه باشیم خلاصه بیتوجهی به اینها برنامه رو به هم میریزه در نتیجه برنامه ریزی برای تقویت فرهنگ اسلامی مبتنی بر همینه مبتنی بر شناخت این, فو این خلاص زمینه ها و در کنار اون و ترجیح اولویت‌ها ها به صورت منسجبه. و ما اگه اینا برنامه روزی نکنیم میریم روی چیزهای سرمایه گذاری میکنیم که سرمایه رو حدر میده در غیر این صورت سرمایه های وقتی و سرمایه های انسانی غیر انسانی بدون یه به خلاصه اولویت ها استفاده می شوند و خلاصه و به تحبیر استفاده می شوند و اما باید گفت اما این شیوه به معنای حدر دادن این امکانات و ظرفیت هاست بدون اون که بدون اون که واجب واجبات الهی در مقام حکمرانی به صورت مناسب خلاصه امتصال شوند ما میاییم سرمایه رو روی چیزهایی میذاریم که تحصیلش کمتره میاییم شاخ و برگ رو آموزش میدیم آموزش خلاصه حواشی به جای رعایت و مساله اهم آموزش مطالب کمتر ضروری غیر ضروری یا کمتر ضروری به جای آموزش خلاصه معارف معارف اساسی خلاصه قرار میگیره در نتیجه در آموزش در برنامه ریزی خلاص غیر مناسب این آموزش ها انرژی حدر میده ما مثلا در تربیت انسانی خلاص آموزش درست اعتقادات میتوانم زمین ساز تعهد عملی افراد و تدعیان عینی خلاصه عملی و تدعیان عینی افراد در سطح جامعه باشه اما پرداختن به مثلا احکام درجه دو سه خب الاته نمیخوام به این آموزش رایجمون تمام نقد رو وارد کنم پرد... اما نپ... بگیم اینجور نپرداختن به این موارد ضروری ی تا اون آموزش های سوری و مناسک رو هم خلاصه عزبه میبره یا اون آموزش های ما حالا ما مفهوم رو آم گفتیم معارف اسلامی از اعتقادات بنیادین و احکام خلاصه محوری مثل نماز و روزو اینها بگیم احکام اولویتدار و ضروری ما میریم سرمایه رو میذاریم روی آموزش یه چیزای پراکنده از آموزش زبان انگلیسی بگیریم که یک بار من سرانگوشتی حساب کردم دیدم در دوران حالا ما سه سال راهنمایی داشتیم و چهار سال دبیرستان دیدم یک سال از عمر ما به آموزش زبان انگلیسی سرف شده خب آموزش عربی هم همینطور خب آموزش عربی یک بار مقام معظرم راهبری دیدم نقد خوبی زد دیدن گفتم آقا مثلا آموزش حال خلب معنای خلبان معنای فلان این به چه درد میخوره ما می‌خویم قرآن رو یاد بفهمیم روایت رو بفهمیم شاخ و شاخوبرد رو میپردازیم پس آموزش های دست دوم یک سری آموزش‌ها رو تفکیک کنیم در مدارس در مساجد در دفاع از دین‌ها در سطح عموم ما ممکنه بیایم یک مسائل دست چندوم رو بپردازیم مسائل اصلی باقی مانه خب این فقط مسئله شخصی نیست این در واقع در سطح حاکمیت این خلاصه میتوانه لحاظ بشه اگر به این موارد ننجامه نپرداختن به موارد ضروری و تقدیم موارد غیر ضروری یا کمتر ضروری اینا میشه به کجا می انجامم؟ می به فرسای در واقع تضعیف ارزش های اسلامی ارزش های اسلامی در سطح جامعه منجر شود و این بلکه منجر شده. ما اگر انرژیمون رو میذاشتیم. اون قسمت اساسی در واقع ما آسیب شناسی نظام جمهوری می خواهیم بکنیم این که مساله ایمان یا مسئلت اعمال ضروری تر اونها رو تقدیم مقدم نکردیم به چیزای دیگه پرداختیم خب حالا یک مورد دیگه هم ما در اینجا داریم به عنوان قاعده دیگه که به این بحث نزدیک جدا انشاءالله مستقل بحثش خواهیم کرد در واقع تقدیم مصلحت جوهری بر مسلحت های شکلی این رو بر جدا از خواهیم کرد و مصادیقش در اینجا به این بحث نزدیکه ما یه مصلاحات های اساسی رو رحامی می‌کنیم، به امور شکلی و حاشیه‌ای میپردازیم خب پس ما نتیجه این قاعده چیه؟ باید بیایم در شناخت معارف یه کار اساسی ورد بکنیم نتیجه عملی در واقع بگیم سمره عملی اینجایه سمره عملی پررنگیه ضرور در واقع این قاعد مختزیه دستبندیه خلاصه اعتقادات اعتقادات و احکامه خب اما این به این محدود نمیشه قواعد فرعی دیگه تقدیمه در واقع خب خلاصه چنانکه تقدیم آموزش سیانت و دفاع از اعتقادات هم چیه باید به صورت اولویت گذاری شده مطرح بشه پیگیری بشه خب ما یک جایی مثلا میرییم آموزش که فرد رو میفرستیم آموزش میکن به اعتقادات رو دفاع کنیم میره سراغ اعتقادات از دوم خب با اون اعتقاات اساسی رو که رها کنیم البته یک جایهای پیش‌فرض‌های وجود داره مردم با اون اون حساسیت ندارن و خب من کنم اونها رو به چیز نمی کشانند خب مثلا الان یه تحنه اعتقادی هم این روز خواهد زنیم الان دفاع از دفاع از جایگاه نبوت و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الان یک ضرورته یک کسی که شخصیت پرت و پلاگویی است بیا تموند جایگاه پیامبر جسارت کنه خب این الان اگر فتح باب بشه این دیگه خراب میشه خب دفاع از جایگاه نبوت و رسالت پیامبر نسبت به برخی اعتقادات دیگر اولویت داره در نتیجه می اولویت و ضرورت داره نه صرف اولویت ترجیح نها نه ضرورت داره بنابرای چرا که حد درقل این که چرا که با تضعیف این جایگاه تمام اعتقاداتی که از طریق پیامبر گرامی اسلام به ما میرسه اینا همش لطمه میبینه به مسلمانان تعلیم داده میشه اه خلاصه اه با تضعیف این جایگاه تمام اعتقاداتی تضعیف خواهند شد که از طریق پیانبر تعلیم داده شده انت. خب پس کوچکترین خدشه اینجا مشکل آفرینه حالا چگونه باید این رو درمان کرد پاسو خودید چگونه خلاصه مشت به دهانه این بندی خدا زد این خودش مسئله است یک جایی هالا ممکنه مفاسدی هم داشته بشه گای اوقات خود این خیلی حساسیت داره گای اوقات ممکنه یک موج تبلیغی بزرگی ما درست کنیم بستگی به شکل کارم داره اما اصلش نادیده گرفته نود بشه اگر اگر مثلا همون مقالی سلمان بشتی خب اساسی ترین بحث بود در واقع اون هم یک نوع چی بود تضعیف بود چونان که این دفاع از این جایگاه هم باید باید از طریق خلاصه پاسخها و موازه قاطعی صورت بگیره که مانع شکلگیری گیری هر نوع چی باشه مانعش یک گیری و ضربه های خلاصه ضربه های بعدی به اسلام باشه اگر ما اون سلمان رشدی رو می توانستیم اعدام بکنیم الان در سوئد و سوئیس سو اینطور موارد جسارت به قرآن و اینجور معلوم شکل بگیره سستی در سستی یا بگیم ناتوانی در دفاع از ارزش های اساسی منجر به دوستان فکر من فرصت داره تمام میشه لان خبر که قدر میشه خلاصه ناتوانی در این مقوله یا سستی در دفاع ارزش های اساسی و اعتقادات اساسی منجر به ناتوانی ها و ناتوانی های بعدی و ضربه دشمنان به همه اعتقادات خواهد شد و لذا ما باید دائم و مستمر دنبال تحقیق باشیم از باب عید دوله همه ستت و این پاسخ باید متناسب باشه در واقع پاسخ و دفاع از ارزشها و اعتقادات اساسی نیازمند راهکارهای مناسب خود است چرا که بدون خلاصه راهکارهای مناسب نمی توان هم هم نمیتوان این کار رو به سامان رساند و هم می به تضعیف جایگاه و توانمندی های بعدی مسلمانان هم بینجامه پس ما به جای این که مثلا به موارد محدود و جزیب پردازیم خب این یک مسئله اساسیه در واقع یک موقع میاد یک حکم جزئی رو برچسبی میکنه سر جایش واجب. خلاصه باید دستبندی اعتقادات رو کرد چنان که باید اولویت گذاری بشه چرا که خلاصه همه اعتقادات در یک سطح از اهمیت نیستند برخی از اونها جایگاه اساسی تلی دارند نسبت به دیگر اعتقادات دارند در واقع همین منطق موجه بینه خب این احتزاب بر چه اساسی بود اگر بخوایم تحلیل بکنیم در واقع ته مستند تحلیلی و در واقع خاصگاه ترجیح مزبور چیه اینه. اصلا ماهیت ماهیت اعتقادات نسبت به ماهیت احکام ترتب خلاصه رتبی دارند ترتب و تقدم رتبی دارند جایگاه احکام پس از جایگاه اعتقادات اساس اعتقادات البته باور به وجوب برخی از احکام اساسی مانند نماز و روزه و جهاد و حج و برخی موارد دیگه میتونه در سطح خلاصه ات... ماهیت اعتقادات در سطح اعتقادات تعریف بشه و صرفن و این موارد خلاصه صرف در سطح دیگر احکام نیستند خب طبیعی اصل نماز وجود برخی از این احکام جایگاه خاص خودش داره. بنابراین ماهیت اینها چونین است. اصلا ماهیت اعتقادات اساسی جایگاه رفی دارند، رفی دارند که نمی توان جایگاه و رتبه احکام معمولی رو، با اونها قابل مقایسه دانست چرا که خلاصه پذیرش اونهاست که پذیرش اون اعتقادات است که زمینه باور به احکام مزبور رو ایجاد میکنه یا اون که خلاصه پذیرش اونها زمین ساز یا بگیم زمانت اجرایی برای احکام رو فراهم خواهد کرد در نتیجه خلاصه کار کرد و تأثیر اعتقادات خلاصه مقتضی تقدم و جایگاه و تقدم رتبی اونها نسبت به عمده احکام خواهد بود خب اینم یه مقوله خاص خود مهمیه اما تفسرش مهم بود خب اینجا مسئله مهم چیه تفسره است یا بگیم نکته اساسی. اینها دیگه خلاصه دیگر احکام موارد جایگاه نماز روز جهاد و حج در سطح اعتقادات میخلاصه تعریف میشه و این موارد در سطح احکام عادی نیستند این یه نکته متفاوتی که مسئله رو خلاصه متفاوت خواهد کرد طبیعتا ما استنادات و خلاصه جزئی هم می توانیم داشته باشیم ادله تفصیلی میتوانی اینها رو ایجاب بکنه که ما بتوانیم بگیم که احکام الهی نسبت به اعتقادات متفاوتن این یک نکته البته. خب حالا نکته دومینه که نکته از نکته دو اینه که برخی اعتقادات می توانند نسبت به برخی از احکام خلاصه نسبت به برخی از احکام که جنبه ای اساسی دارند خلاصه بگیم اعتقادات جزئی هستند جزئی می توانند نسبت به برخی از احکام که جنبه ای اساسی دارند در رتبه خلاصه متأخر باشند و متفاوت باشند خب نکته سوم که این رو کمک میکنه اینه که اثبات اعتقادات و احکام میتوانند در چارچوبای مختلفی انجام بگیرند به دو صورت راتی و زنی می خلاصه صورت بگیرند این هم یه تأثیری میتونه داشته باشه خلاصه این هم تاثیر این موارد این دوشیوه شیوه می در تصویر کیفیت اولویت میان اونها و تقدیم برخی از اونها بر دیگر موارد مؤثر باشه به چه صورت مثلا احکامی که خب چنان که این احکام زنی هم اثبات زنی هم خلاصه میتوانه به دو صورت باشه اثبات زنی هم میتوانه در دو قالب خلاصه زنیات در واقع تمسک به زنیات معتبر و در واقع زنون غیر معتبر انجام بگیره بنابراین این رو ما چه کار کنیم این زنون معتبر زنون غیر معتبر باید جایگاه خودشون رو معلوم کنند تاثیر این دوشیوه خلاصه اهمیت داره و این خلاصه لزومند یکسان نیستند چنان که خلاصه چنان که عدم التزام به یه بحث مهمی داریم که خدمت شما کنم در تمسک به لوازم خلاصه باور به لوازم اعتقادات میتوانه در حکم موارد قبلی نباشه الحمدالله حمدالله